وصل ششم، تسلی بخشی در مواجهه با سختی ها. بخش اول معدودی از فلاسفه به احساس بدبختی و سطوح حسن زن داشتند به طور سنتی زندگی خردمندانه را با کوشش برای خواهش رنج، استراب، ناامیدی، عصبانیت، تحقیر خود، و شکست عاطفی ملازم شمردند. بخش دوم. فردریش نیچه اشاره کرد که اکثر فلاسفه همواره بیخاصیت بودند. او در پاییز 1888 با اندکی پریشانی گفت: سرنوشت من این است که نخستین انسان شریف باشم. سخت بیمناکم که روزی مرا مقدس بنامند. و این تاریخ را حدود طلوع هزاره سوم می دانست. بگذارید فرض کنیم که مردم حدود سال دو اجازه خواهند یافت آثار مرا بخوانند. او مطمئن بود مردم از آثارش لذت خواهند برد. به نظر می آید به دست گرفتن یکی از کتابهای من از نادرترین امتیازاتی است که فرد می تواند به خود عطا کند. حتی تصور میکنم چون این شخصی در حین انجام دادن این کار کفش های خود را چیزی از پوتین نمیگویم، از پادر میآورد. این امتیازی بود، زیرا نیچه، چهرهی تنها در میان بیخاصیتها، دریافته بود کسانی که خواهان احساس رضایت خاطر هستند، باید از هر گونه سختی استقبال کنند. شما میخواهید رنج را از میان بردارید؟ اگر بشود، و کدام اگر بشودی دیوان وارتر از این؟ ولی ما چه میخواهیم؟ گویی ما به راستی خوش می داریم که رنج را فزونی بخشیم و آن را از آنچه تا کنون بوده است بدتر کنیم. گرچه نیچه در ابراز بهترین آرزوها برای دوستانش بسیار مبادی آداب بود؟ ولی قلبن میدانست به چه نیاز دارند در حق انسانهایی که دوستشان دارم آرزوی رنجوری، پریشانی، بیماری، بدرفتاری و آزردگی می کنم آرزو می کنم که آنها با خودخارشماری ژرف عذاب بیاعتمادی به خود و بدبختی شکست خردگان نمانند این امر کمک می‌کند تا دریابیم چرا کارش به مقام زیر رسید گرچه خودش هم این وضع را پیش بینی کرده بود بزرگترین هدیه‌ای که تاکنون به بشریت داده شده است بخش سوم نباید از ظاهر افراد بترسیم در چشم بیگانگانی که نخستین بار ما را مینگرند، اغلب چیزی بیش از خصیصه واحدی نیستیم که نظر آنها را به خود جلب می کند به این ترتیب نرم خودترین و ساده ترین فرد اگر فقط های بزرگ و آویختهی داشته باشد چشمهای عادی از او تنها های آویختهش را توانندید و صاحب آن چشمها با خود میگوید گوید شخصیتی نظامی بسیار تند خوب و عصبی و گاهی مختدر و خشن. و با او مطابقه همین ویژگی رفتار میکنند بخش نیچه همیشه چنین نظر مثبتی به سختی نداشت. دیدگاه های اولیه او مرهون فیلسوفی بود که در بیست یک سالگی به هنگام تحصیل در دانشگاه لایپزیگ کشف کرده بود. در پاییز 1865، در کتاب فروشی دست دومی در خیابان بلومنگاس لایپزیک به طور تصادفی نسخه ای از جهان به مسابقه اراده و بازنمود را برداشته بود. کتابی که نویسنده‌اش 5 سال قبل در خانه‌ای در فرانکفورت، واقع در 300 کیلومتری غرب لایپزیک از دنیا رفته بود. کتاب شپنهاور را به عنوان چیزی کاملا ناآشنا در دست گرفتم و تورخ کردم. نمیدانم کدام دایمانی در گوشم زمزمه می‌کرد این کتاب را به خانه ببر. به هر حال این اتفاق رخ داد. این کار خلاف عادت متداول من بود که هرگز برای خریدن کتاب عجله نمی کردم. در بازگشت به خانه خود را با گنج جدیدم به گوشه ای پرت کردم و اجازه دادم آن نابغه پویای اندوهگین من را تحت تأثیر قرار دهد. از هر سطری فریاد روگردانی نفی تسلیم و رضا بلند. مرد پیرتر زندگی مرد جوانتر را تغییر داد. به نظر شپنهاور، جوهری حکمت فلسفی گفتار عرستو در اخلاق نیکوماخوس بود. انسان عاقل طالب رهایی از درد است. نلذت. برتری تمام کسانی که در پی رضایت خاطر بودند، این بود که ناممکن بودن رضایت خاطر را تشخیص می دادن. و بنابراین از مشکلات و استرابی که معمولاً در تعقیب رضایت خاطر با آنها روبرو میشویم شویم پرهیز میکردند. ما باید هدف خود را نه به امور مطبوع و دلپذیر زندگی بلکه به پرهیز از شرور بیشمار آن تا بیشترین حد ممکن معطوف کنیم ترین تقدیر از آن کسی است که زندگی را بدون هر گونه درد بسیار شدید جسمی یا ذهنی سپری کرده است وقتی بعدا به مادر بیوه و خواهر نوزده سالش در نامبورگ نامه نوشت به جای گزارش های معمول درباره رژیم غذایی و پیشرفت مطالعاتش خلاصه از فلسفه جدیدش را که درباره رویگردانی و تسلیم و رزابود بیان کرد. میدانیم که زندگی سرشار از درد و رنج است هرچه بیشتر بکوشیم از آن لذت ببریم بیشتر اسیر و بردش می شویم. و بنابراین باید از خوشی زندگی چشپوشی کنیم و راه پرهیز در پیشگیریم. این امر به نظر مادرش عجیب بود و در جواب او توضیح داد که آن, تظاهر یا آن عقیده را به اندازه نامی مناسب پر از اخبار دوست ندارد و پسرش را نصیحت کرد که قلب خود را به خدا واگذارد و مواظب به باشد. ولی تأثیر شپنهاور کاهش نیافت. نیچه زندگی محتاطانه ای را شروع کرد. در فهرستی که تحت عنوان توهمات خود فراهم کرد، رابطه جنسی جای مهمی داشت. در دوران سربازی در نامبورگ عکسی از شپنهاور را روی میزش قرار داد و در لحظات سختی فرگاد می کشید شپنهاور کمک! در 24 سالگی هنگام اخز کرسی زبانشناسی کلاسیک در دانشگاه بال، جذب حلقه دوستانی ریشار و کازیما واگنر شده بود. زیرا نیز عاشق حکیم دوراندیش و بدبین فرانکفورت بودند. بخش پنجم سپس بعد از بیش از یک دهه دلبستگی به شپنهاور در پاییز 1876 به ایتالیا سفر کرد و دچار تغییر فکری شدیدی شد. او دعوت مالویدا مایزنبوگ حامی پرشور میانسال و ثروتمند هنر را پذیرفته بود. مالویدا از نیچه خواسته بود چند ماهی را با او و گروهی از دوستانش در ویلایی واقع در سورنتو در خلیج ناپل بگذراند. مالویدا نخستین واکنش نیچه به ویلا روبیناتچی واقع در خیابانی پوشیده از برگ در کناره سرنتو سورنتو را چنین گزارش کرد: هرگز او را چنان سرزنده ندیدم. با صدای بلند از ته دل می‌خندید. اتاق پذیرایی به خلیج جزیره ایسکیا و کوه آتشفشانی وزوویو دید داشت و در جلوی خانه باغ کوچکی با درختان انجیر، پرتقال و سر و های انگور وجود داشت که به دریا منتهی می‌شد. مهمانان شنا می‌کردند و از پومپئی، وزوویو، کاپری و معابد یونانی واقع در پایستوم بازدید می‌کردند. قضاهای سباکی می‌خوردند که با روغن زیتون تهیه می و شبها در اتاق پذیرایی با هم کتاب می خوندند. درس گفتارهای یکوب بورکارت درباره تمدن یونانی، مونتنی لاراشفوکو، ووونارگ استندال، چکامه گوته به نام دیب قوت و و نامش به نام دختر نامشروع، هرودوت، توکودیدس و قوانین افلاتون. گرچه شاید اقرار منتنی به انزجارش از افلاتون بر نیچه سرگذاشته بود ولی به هر حال خود نیچه هم از افلاتون خسته میشد. شد مکالمه افلاتونی آن جدلگری بی نهایت خودپسندانه کودکانه برای کسی مزدارد که نوشته های یکی از آن فرانسوی های نازنین را نخوانده باشد افلاتون آور است در حالی که در مدیترانه شنا کرد غذای پخته شده با روغن زیتون به جای کره میخورد. هوای گرم تنفس میکرد و منتنی و استندال میخواند. این مسائل پیش پا افتاده، غذا، مکان، آب و هوا، سرگرمی و تفری کل مغله خودخواهی، فراسوی هر مفهومی از آنچه تاکنون با اهمیت تلقی شده مهمتر است. به تدریج فلسفه درد و لذت و همراه با آن دیدگاهش را درباره سختی تغییر داد تماشای غروب آفتاب در خلیج ناپل در آخر اکتبر 1876 به او ایمان کاملا غیر شوپنهاوری جدیدی به زندگی بخشید احساس می‌کرد در جوانی پیر بوده و از این فکر که در آخرین لحظه نجات یافته اشک می‌ریخت بخش ششم در نامهای به کازیما واگنر در اواخر 1876 تغییر بینش خود را به طور رسمی اعلام کرد. شگفت زده میشوی، اگر به چیزی اعتراف کنم که به تدریج به وجود آمده. ولی کم و بیش به طور ناگهانی به زمیر خداگاه همراه یافته. مخالفت با تعالیم شپنهاور؟ تقریبا درباره تمام قضایه کلی با او مخالفم. یکی از آن قضایا این بود که چون رضایت خاطر توهم است خردمندان باید خود را وقف پرهیز از درد کنند، نه طلب لذت و به توصیه شپنهاور در اتاق آیق شده کوچکی در آرامش زندگی کنند نصیحتی که اکنون به نظر نیچه هم جبونانه بود و هم غیرواقعی و او را شگفت زده می کرد همانطور که چند سال بعد به لحن تحقیرامیزی گفت این کار تلاشی سرسختانه بود برای پنهان ماندن در ها مثل گوزنی خجالتی قرار بود نه با پرهیز از درد بلکه با تشخیص نقش آن به عنوان مرحلی اجتناب ناپذیر و طبیعی برای دستیابی به هر چیز خوبی رضایت خاطر حاصل شود بخش هفتم آنچه سوای قضا و آب و هوا به تغییر دیدگاه نیچه کمک کرد تعمل او در باب معدود افرادی در سراسر تاریخ بود که به نظر می رسید زندگی رضایت بخش را واقعا شناخته بودند. افرادی که منصفانه می شد آنها را ابرمرد. یکی از مناغش اصطلاحات نیچه شمرد. بدنامی و پوچی این کلمه بیش از آنکه به فلسفه خود نیچه مربوط باشد ناشی از دو عامل دیگر است شیفتگی خواهرش الیزابت به ناسیونال سوسیالیسم فردریش مدت‌ها پیش از آنکه خواهرش با پیشوا دست دهد او را آن مادغاز گاز سامی ستیز انتقامجو توصیف کرد و تصمیم ناآگاهانه نخستین مترجمان انگلیسی نیچه به انتخاب نام یک قهرمان کارتونی افسانه‌ای یعنی سوپرمن به عنوان معادل واژه اوبرمنش یا ابرمرد ولی های نیچه چندان ربطی به سوپرمنها یا فاشیستها نداشتند. او در اظهار نظری گزارا در نامه‌ای به مادر و خواهرش سرنخ بهتری از هویت این ابرمردها به دست داد. واقعا هیچ فرد زنده‌ای وجود ندارد که خیلی به او اهمیت بدهم. افراد مورد مدت مدت‌های زیادی است که از دنیا رفته‌اند. برای مثال، آب گالیانی، آنری بل یا منتنی او میتوانست یک قهرمان دیگر یان وولفگانگ فانگوته را هم اضافه کند شاید این چهار نفر بهترین سرنخها برای درک منظور نیچ از زندگی رضایت بخش باشند آنها وجوه مشترک زیادی داشتند کنچکا از نظر هنری با استعداد و از لحاظ جنسی پرشور بودند به رغم رویدادهای های قمنگیز میخندیدند و میرخزیدند آنها مجذوب آفتاب ملایم هوای روشن و سبک گیاهان جنوبی دم بازدم دریا خوراکی های سبک از میوه ها گوشت و تخم مرغ بودند بعضی از آنها تنز سیاهی شبیه خود نیچه داشتند لبخند شرورانه ای شادی آفرین از پس زمینه های بدبینانه آنها های خود را آزموده بودند و مالک چیزی بودند که نیچه زندگی میخواند و به معنی شجاعت جاه‌طلبی، متانت استحکام شخصیت شوخ طبعی و استقلال بود و در نتیجه فقدان زهد فروشی دنبال روی رنجش و عصاقورت دادگی آنها درگیر امور دنیوی بودند مونتنی دو دور شهردار بردو بود و سوار بر اسب در اروپا مسافرت کرد. آبگالیانی ناپلی منشی سفارت در پاریس بود و آثاری در باری پول و توضیع قللات نوشت که ولتر آنها را به علت ترکیب کردن شوخ طبعی مولیر و هوشمندی افلاتون ستود. گوته یک دهه به عنوان کارمند دولت در دربار وایمار کار کرد. او پیشنهاد اصلاحات در کشاورزی، صنعت و اعانه دادن به فقرا را ترک کرد و های دیپلماتیک انجام داد و دو بار با ناپلئون صحبت کرد. گوته در دیدار از ایتالیا در 1787 از معابد یونانی پایستون بازدید کرد و سه بار به کوه وزوویوس صعود کرد. البته آنقدر به دهانه آتشفشان نزدیک شد که بتواند از فوران سنگ و خاکستر زد نیچه او را شکوهمند و آخرین آلمانی که به او احترام می‌گذارم میخواند. او کار و کوشش عملی را به یاری تلبید از زندگی دلبر نکند بلکه خود را در دل آنف هرچه توانست بار بر دوش و بر سر و در برخیش گرفت او خواهان تمامیت بود و با گسست رابطه خرد و شهوت و احساس و اراده جنگید استندال همراه ارتش ناپلئون سراسر اروپا را در نوردید، هفت بار از ویرانه های پمپئی بازدید کرد و پل ژار را در زیر نور قرص کامل ما در ساعت پنج صبح ستود. مشاهده کدیسیوم روم مرا در رؤیای شیرین جرفتری فرو نبرد. قهرمانان نیچه بارها عاشق شده بودند. منتنی فهمیده بود که کل جوش دنیا معطوف و به آمیزش دو جنس است در هفتاد و چهار سالگی در سفر به مارینباد گوته مفتونه فون لوتزوف دختر زیبای 19 سالهی شده بود و او را برای نوشیدن چای و قدم زدن دعوت کرده بود پیش از اینکه از او خاستگاری کند و درخواستش رد شود استندال که آشق ورتر گوته بود به اندازه گوته پرشور بود خاطرات او شرح فتوحات دهه های متوالی بود در 24 سالگی هنگامی که همراه ارتش ناپلون در آلمان به سر می عاشق دختر یک مهمان خانهدار شده بود و در خاطراتش با غرور میگفت که این دختر اولین زن آلمانی بود که مرا کاملا از پاد درآورد. و سرانجام این اینکه همه ای آنها هنرمند بودند به قول نیچه هنر بزرگترین محرک زندگی است و حتما به طرزی استثنایی از آفرینش مقالات، سقرات خیالی، مرسیه های رومی و در باب عشق احساس رضایت خاطر کرده بود.